هر نکته که گفتم در وصف آن شمائل هر کوشنید شنید گفتا در رقائل تحصیل عشق و آسان و اول آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایه از شافعی نفرسند امثال این مسائل گفتم که کی ببخشی بر جان ناتبانم گفتن زمان که نب نبود جان در میان حائل دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری مرزیت و سجایا محمودت الخسائل در این گوشگیری بودم چو چشم مستد و کنون شدم به مستان چون عبروی تو مائل از اودید صدح تو فون نوح دیدم و از لوح سین نقشد هرگز نگشت زائل ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است یا را ببینمان را در گردنت اماائل.